عزیزان به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. ضمن بررسی کتاب مقدس، ما به کتاب نبوتی اشعیا رسیدیم. امروز ما بیشتر در مورد اینکه اشعایای نبی پیشگویی کرده که چگونه مسیح منجی موعود جانشین رنج‌های ما خواهد شد. و از خدمت او در رابطه با دادن بینایی به کوران، آزادی به و شفای شکست دلان یاد خواهیم گرفت. حالا بیاید در این درس مهم با معلممون همراه باشیم. من همیشه فکر کردم که تکرار اساس تعلیم هست. کسانی که به من تعلیم میدادند به من گفتن که اگر تکرار نکنی مثل اینه که تعلیم ندادی. سموئل جانسون گفته این خوب جا نیفتاده که مردم بیشتر نیازمند یاداوری هستند تا محتاج آموزش. در این جلسه من میخوام بر اصولی تاکید کنم و اونها رو تکرار کنم که به ما کمک میکنه در کل نبوتها و مخصوصا نبوت اشعایه خوب درک کنیم. دو بخش در عهد قدیم هست که اساس عهد قدیم رو نشون میده. این عقیده بر اساس ای در عهد جدید عنوان شده که نگرشی به عهد قدیم داره. این دو بخش از عهد قدیم که گفتیم جوهر عهد قدیم هستن عبارت هند از کتاب شریعت و بخش انبیا. کتاب شریعت عبارت هند از پنج کتاب اول کتاب مقدس. و انبیا کتاب هایی هستند که ما اکنون در بررسی عهد قدیم به اونها پرداختیم کتاب های نبوتی با کتابش اشعیا شروع میشن و با کتاب ملاکی به پایان میرسند. گاهی عهد جدید به موسا و به انبیا اشاره میکنه و یا فقط به انبیا وقتی که عهد جدید به قسمت نبوتی عهد قدیم اشاره میکنه منظورش تمامی انبیایی نیست که وجود داشته مثل ایلیا و الیشا و یا حتی موسی و داوود بلکه به اون انبیاه اشاره میکنه که کتاب نوشتن وقتی که عهد جدید به انبیا اشاره میکنه منظورش نوشتهجات نبوتی هست مثلا یکی از ارجاعاتی که در عهد جدید به این بخش از عهد قدیم شده که اهمیت نوشتهجات نبوتی رو نشون میده داستانی هست که ایسا در باب 16 انجیل لوقا در مورد مرد ثروتمند و مرد فقیری به نام ایلازر گفته وقتی مرد سروتمند متوجه میشه که در جهنم هست و هیچ کاری از دستش بر نمیاد شروع به التماس میکنه و میگه ایلازه را به خانه برادرانم بفرست تا به برادرانم در مورد عذاب این مکان هشدار بده. جوابی که به او داده میشه اینه اونها موسی و انبیا رو دارند پس به سخنان ایشان گوش فرا میدهند و مرد ثروتمند میگه نه ای پدر ما ابراهیم اگر کسی از مردگان نزد آنها برود آنها توبه خواهند کرد. دوباره به او پاسخ میدند اگر کسی به موسی و انبیا گوش نسپارد، حتی اگر کسی از مردگان هم برخیزد، به او هم گوش نخواهند داد. این بخش از کتاب لغا ارزش عظیمی برای این بخش از عهد قدیم که بهش انبیا میگیم قائل هست. به مرد ثروتمند گفته شده اگر اونها به انبیا گوش ندهند، اگر به انبیا باور نکنند، حتی اگر کسی از مردگان هم قیام کنه، به او هم گوش نخواهند داد. ببینید چیزی که سعی میکنه بمانشون بده اینه که عیسی این بخش از عهد قدیم رو بسیار عظیم توصیف میکنه و میگه اون خارق هست. است. کتابهای انبیا پر از تعالیم خارق و پر از نبوت فوق العاده و پیشگویی‌هایی است که کلمه به کلمه به واقعیت میپیوندند. گاهی نبوت‌ها صدها سال قبل از وقوعشون پیشگویی شدن و به هر حال تماماً تحقق یافتند. حالا این به همون اندازه خارق العاده است که قیام از مردگان خارق العاده است. چیزی که عیسی میگفت این بود. شما یا به چیزهای خارق العاده باور می کنید یا نمی کنید اگر به انبیا باور نکنید به قیام کسی از مردگان هم باور نخواهید کرد یک بود از انبیا که من قبلا براتون گفتم مربوط به وظیفه انبیا هست یکی از وظایف انبیا این بود که در مورد موانع و مشکلات کار خدا فریاد بزنند و هشدار بدن. وقتی که کار خدا در این دنیا به مانعی خورد، این وظیفه نبی بود که در مورد اون مشکل و مانع فریاد بزنه تا اینکه اون مشکل برطرف بشه و بعد کار خدا دوباره از سر گرفته میشد. به این دلیل بود که در تاریخ یهود بیا ظاهر شدند. در جلسه اول بررسی انبیا گفتم که تمامی انبیا که کتابهایی نوشتند در دوره خاصی از تاریخ قوم یهود زندگی و معیزه کرده و مورد از حدود سال 800 تا 400 قبل از میلاد، اون دوره یکی از مشکل دارترین دوره ها در تاریخ قوم یهود بود. ارتش آشور آمدند و بر پادشاهی شمال غلبه کردند و مردم را به اسارت بردند. پی حمله بابلیها ها مغلوب شدن و به اسارت رفتن پادشاهی جنوب بود. حالا اینها مشکلات بزرگی برای قوم خدا بودند. چون خدا میدونست که این هجوم ها و اسارت ها خواهند اومد و در این دور از تاریخ قوم یهود انبیایی رو برانگیخت تا اینکه به مردم در مورد آمدن داوری خدا هشدار بدن. این دو اسارت به اسارت رفتن شمالی ها توسط آشور و به اسارت رفتن جنوبی ها توسط بابلی ها داوری خدا بود خدا همیشه قبل از اینکه داوریش بر قومش بیاد در این مورد توسط انبیا هشدار داده اولین و بزرگترین نبیی که ضمن هامون به او میرسیم اشعیا هست به این دلیل بزرگترین میگیم چون کتاب او از دیگر انبیا طولانی تر هست و همینطور از این نظر به او بزرگترین نبی میگیم چون او نبی انبیا بوده وقتی شما انبیا رو ملاحظه میکنید باید زمینه تاریخی که اونها در اون زندگی کردن بدونید. گاهی در بعضی از کتاب‌های نبوتی در همون آیات نخست این اطلاعات رو به شما میدن. اگر انبیا بخواهند به ما دیدگاهی تاریخی بدن به ما میگن که وقتی این انبیا دعوت به موعظه شدند کدوم پادشاه در اون دور فرمان روایی میکرده؟ در ابتدای خدمت اشعیا اوزیا شاه بود. اوزیا حدود 42 سال حکومت کرد. اشعیا خدمت نبوتی رو در اواخر حکومت اوزیا شروع کرد. و در واقع زمانی که اشعیا تجربه روحانیش رو پشت سر میگذاشت و به خدمت نبوت فراخوانده میشد، اوزیا مرد. وقتی به کتاب آموس می رسیم، خواهیم دید که آموس در اوایل حکومت اوزیا می میکرده. وقتی آموس پیرمردی بوده، اشعیا یک پسر بچه بوده. پادشاه دیگری که معاصر با اشعیا بود، یوتام پسر اوزیا بود. اوزیا مبروس بود. او در اواخر حکومتش مبتلا به برست شده بود. و پسرش یوتام در کار حکومت نایب او بود یوتام همینطور در سالهای اول خدمتش آیا حکومت میکرد. بعد پادشاه شریری به نام آهاس گذاری کرد موعظه‌هایش آیا در دوره حکومت آهاز بسیار متفاوت از هایی بود که در زمان اوزیاد داشت اشعیا همینطور همینطور در دوره حکومت هزگیا موعظه کرد که پادشاه خوبی بود اگرچه اشعیا مطالب زیادی داشت که در مورد حمله آشوریها به پادشاهی شمال میگفت، اما همینطور در مورد تأثیرات این حمله بر پادشاهی جنوب هم هشدار میداد. او در دوره پادشاه شریری به نام به پایان عمر خود نزدیک شد. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، راه درستی برای تقسیم بندی کتاب اشعیا هست. راه درستش اینه که بفهمیم کتاب اشعیا به سه بخش تقسیم میشه. 35 باب اول ها هستند. اونها هایی هستند در باب آمدن داوری خدا در قالب حمله آشوریان بر یهودا و همینطور بر پادشاهی شمال بابای 36 تا 39 فواصل تاریخی هستند که به ما میگند که این نبوت‌ها عملاً واقع شده. 35 باب اول کتاب به ما میگن که داوری در راه است. بابای 36 تا 39 داوری رو وقتی واقع شدن شرح میدن. بعد قسمت دیگرش اشعیا بابای 40 تا 66 هست. من فکر می‌کنم که این بخش از اشعیا مورد علاقه بسیاری از مردم هست چون اون شبیه عهد جدید هست اون با این کلمات شروع میشه تسلی دهید قوم مرا تسلی دهید بخش اولش اشعیا مثل یک جراحی روحانی هست بخش دومش اشعیا مانند دوره شفای بعد از جراحی هست بنابراین این بهترین روش برای تقسیم بندی کتاب اشعیا هست بخش بعدی کتاب اشعیا بابهای چهل تا شست واقعا قلب کتاب اشعیا هست و بخشی که احتمالا ورد علاقه بیشتر مردم هست. این بخش به سه قسمت تقسیم میشه با ابهای چهل تا 48 نبوت های معجزمانندی درباره کوروش کبیر ارائه میکنه اشعیا آمدن این امپراتور رو در 150 سال قبل به نام پیشگویی کرده اشعیا او رو به نام خونده و گفته که خدا او رو تعیین کرده تا پادشاهی جنوب رو از اسارت بابل برگردونه اون نبوت کلمه به کلمه تحقق یافت این یکی از مثال‌های برجسته پیشگویی و خدمت نبوت هست. قسمت دوم های چهل تا شست و شش کتاب اشعیا بر صلیب ایسای مسیح متمرکز است. قسمت سوم بر ظهور اولیه و ثانویه ایسای مسیح متمرکز است. پس این بهترین روش برای تقسیم بندی هست. در جلسه قبلی به برخی از این نبوت‌های مسیحایی که آمدن مسیح را شرح می‌دهد نگاهی انداختیم. در پایان جلسه قبلی به یکی از نبوت‌های مسیحاییش که خدمت عمومی عیسی رو شرح میده نگاه می کردیم. عیسی خدمتش رو با یک بیانیه شروع کرد غالبا وقتی مردم نقشه طرح می‌کنن که بر دنیا تاثیر بذارن اونها با نوشتن یک بیانیه کارشون رو شروع می کنن. کارل مارکس و مردی به نام انگلس با همدیگر ای به نام مانیفست کمونیست رو نوشتند در اون بیانیه اونها مطالبی رو نوشتند که فکر می‌کردند راه حل مشکلات جهان هست سالهای سال اون بیانیه وجود داشت اما کسی نمیدونست که اون چی میگه و باید چیکار کرد تا اینکه مردی به نام لنین برسه آمد لنین اعلامیه کوچکی نوشت فقط یک صفحه اعلامیه عنوان اون اعلامیه این بود چه باید کرد منظور لنین این بود که اگر به دنیا با تمام مشکلاتش نگاه کنید و اگر به بیانیه مارکس و انگلز اعتقاد دارید پس باید این کار را بکنید لنین اون رو به صورت عملی توضیح داد به خاطر شخص واسطه‌ای به نام لنین که به عرصه آمد هنوز هم کسانی تحت نفوذ کمونیسم هستند و می اگر شما به اون بیانیه اعتقاد دارید پس باید این کارها را بکنید عیسی خدمت عمومی خودش را با یک بیانیه آغاز کرد او به کنیسه شهر زادگاهش رفت تومارش ایای نبی رو خواست و تومار را از باب یک باز کرد و این کلام را رو خوند. روح خداوند بر من است او مرا مس کرده تا به بی‌نوایان مجددم مرا فرستاده تا آزادی اسیران از و بینایی کوران و رهایی ستم را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم چیزی که عیسی اعلام میکرد این بود روح خداوند بر من است مرا مس کرده تا برای فقیران و مسکینان موعظه کنم فقیرانی که عیسی از اونها صحبت می کرد از این لحاظ فقیر بودند که کور بودند کوری آنها به این معنی بود که اونها دست چپ و راستشون را از هم تشخیص نمیدادند. اونها همینطور از این لحاظ فقیر بودند که اسیر بودند. آزاد نبودند و از این لحاظ فقیر بودند که شکست دل بودند. عیسی شکست دلان را دعوت می کرد. در کنیسه شهر زادگاهش عیسی اعلام کرد خدمت من برای کوران، اسیران، شکست دلان، کوبیدگان و مردمان فقیر هست. وقتی من بشارتم را به این مردمان کور و اسیر و شکست دل اعلام میکنم، کوران خواهند دید، از ایران آزاد خواهند شد و شکست دلان شفا خواهند یافت با اون بیانیه بزرگ، عیسی خدمت عمومی خودش رو شروع کرد حالا این بیانیه عیسی بود من کوران رو بینا خواهم کرد و این خدمت تعلیم او بود از ایران رو آزاد خواهم کرد این خدمت مشورت او بود بعد او گفت به شکست دلان شفا خواهم داد این چیزی بود که او گفت و کاری بود که انجام داد اساره زندگی عیسی مسیح رو در انجیل لغا یا هر کدام از انانجیل دیگر خواهید دید که هر چرا گفته انجام داده. در نبوت‌های مسیحایی اشعیا با ما از نحوه زندگی مسیح صحبت میکنه. ما به برخی از نبوت‌ها در جلسه گذشته نگاه کردیم، شاهراهی برای خدا و هفت روح خدا. اما 700 سال قبل از آمدن عیسی، اشعیا این پیشگویی رو در مورد خدمات مسیح و پیشرفت کار او میکنه که او خود نیز در بیانش ذکر کرده. برد عملی بیانی ایسا بسیار مهمه یکی از ماهیج چیزها در مورد تعالیم عهد جدید اینه که امروزه کلیسا بدن مسیح هست وقتی مسیح آمد او به مدت ۳3 سال یک بدن داشت در پایان دوره ۳ ساله او شاگردانش را به کناری کشید و به اونها گفت لازم هست که من این بدن رو ترک کنم زمانی که او در اون بدن جسمانی حضور داشت او فقط هر بار میتونست در یک جا حضور داشته باشه او خدا در جسم بود، او امانوئیل یا خدا با ما بود. بنابراین او گفت لازمه که این بدن رو ترک کنم، من خواهم رفت. اما دوباره به شکل تسلی دهنده باز خواهم گشت. وقتی روح القدس بیاید، او در شما خواهد بود، با همه شما و من در شما خواهم بود. پس هر جا که یکی از شما باشید، من همانجا خواهم بود. این معنی چیزی که عهد جدید میگه پیروان عیسی مسیح کلیسای او هستند. بدن مسیح هستند ما دستهای او هستیم ما پاهای او هستیم ما وسیله هستیم که او توسط ما خودش رو ظاهر میکنه در ایتالیا کلیسایی بود که در جنگ جهانی دوم بمباران شد و بعد از جنگ بازسازی شد مجسمه زیبایی از عیسی در مقابل در ورودی اون قرار داشت ساز توانسته بود تمام بدن رو بازسازی کنه به بجز دستهاش رو او قطعات لازم برای بازسازی دستها رو پیدا نکرده بود مجسمه ساز در فکر ساختن دست های برای مجسمه بود. اما اون مجسمه چنون شاهکاری بود که اون نخواست اون کار رو بکنه. بالاخره لوه برنزی زیبایی رو در مقابل مجسمه قرار داد و بر روی اون نوشت او به جز دست ما دستی ندارد. این شیواترین روشی بود که میشد بیان کرد که ما بدن مسیح هستیم. ما دست مسیح قیام کرده ی زنده هستیم. وقتی عیسی بر روی زمین بود، اگر مأموریت او این بود که نابینایان رو با تعلیم کلام خدا بینا کنه، اگر مأموریتش این بود که اسیران از را آزاد کنه، اگر مأموریتش این بود که شکست دلان رو شفا بده، فکر می‌کنید امروز او میخواد توسط من و شما چه کاری انجام بده؟ آیا می‌خواست که دست‌های ما رو مثل دست خودش به کار بگیره؟ من با تمام وجودم باور می‌کنم که توسط من و شما او باز هم همین کارها رو انجام میداد او میخواست که کوران رو بینا کنه، میخواست که اسیران رو آزاد کنه، میخواست که شکست دلان رو توسط کلیسا شفا بده. اگر شما یک ایماندار و شاگرد ایسای مسیح هستید، آیا میدونید که شما تنها بدنی هستید که مسیح قیام کرده و زنده داره؟ آیا میدونید مسیحی که در شما زندگی میکنه میخواد به نابینایان روحانی بینایی عطا کنه؟ و به اسیران روحانی آزادی و به شکست دلان و کسانی که هر روزه با شما مواجه میشن شفا بده وقتی با کسانی مانند اونهایی که در بیانیه مسیح به تصویر کشیده شدن روبرو میشید این یادتون باشه اون بیانیه در باب 61 اشعیا ثبت شده و عنوانش این طور هست. روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا محض کرده تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی نداکنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما مایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم تا قرار دهم برای ماتمیان سهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوهگری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت تا ایشان درختان ادالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی میده شوند. بیایید به دقت کاربرد اون بیانیه رو بررسی کنیم به عبارت دیگه میخوام ازتون بپرسم بیانیه چی میگه معنی اون چیه معنی اون برای ما چیه اولین کاربردش اینه اگر شما نابینا هستید اگر سردرگم هستید اگر دست راستتون رو را از چپتون تشخیص نمیدید اگه نمیدونید چیکار کنید پس مأموریت مسیح در مورد شماست بیانیه او به شما میگه که ماموریت او رفع نیازهای شماست تا بینایی رو به شما برگردونه اگر شما یکی از کسانی هستید که اسیر هستند، اگر آزاد نیستید اگر هر کاری رو که نمیخواهید انجام میدید اگر کاری رو که لازم انجام بدید انجام نمیدید اگر شما معتاد هستید اگر عادت و امیالی شما رو کنترل میکنند اگر شهوت و انواع زنجیرهای روحانی شما را رو بستهند شما آزاد نیستید پس به یاد داشته باشید که مأموریت مسیح به خاطر شماست. او دقیقاً به خاطر کسانی مثل شما آمد. او میخواد ببینه که شما آزاد شدید، اگر به خاطر مشکلات زندگی شکسته اید، اگر با بارهاتون تنها رها شده اید، یادتون باشه که عیسی برای کسانی مثل شما آمد. او میخواد که شما شفا پیدا کنید. او میخواد که شما سالم بشید. این اولین کار برد بیانیه مسیح هست که توسط اشعیا پیشگویی شد و توسط مسیح وقتی که آمد تأیید شد. دومین کاربردونی هست که قبلا بهش اشاره کردیم. سعی کنید فردا و روزهای دیگه وقتی با کسانی روبرو میشید با این نگرش با اونها مواجه بشید. آیا اونها کور هستند؟ آیا اسیر هستند؟ آیا شکستهاند؟ اگر تشخیص میدید که اونها کورند چون سردرگم هستند و نمیدونند چیکار کنند؟ اگر تشخیص میدید که آزاد نیستن، و یا اگر تشخیص میدید که دلشکسته هستن، یادتون باشه که عیسی مسیح میخواد توسط شما با اونها ملاقات کنه او میخواد که دستهای شما رو به کار بگیره او میخواد که از مهارت و زندگی شما برای ملاقات با مردم کور استفاده کنه برای ملاقات با اسیران برای ملاقات با شکست دلان من نمیدونم که آیا میدونید وقتی مسیح بر روی زمین بود چقدر نسبت به مردم شفیق و دلسوز بود کتاب مقدس میگه وقتی عیسی مسیح جمعیتی رو میدید تمامی بدن او به خاطر گریه میلرزید. به خاطر اینکه خیلی نسبت به اونها دلسوز بود چه چیزی باعث میشد که او نسبت به جمعیت این همه دلسوزی کنه کوری اونها به خاطر این بود که اونها مانند گوسفندان بدون شبان بودند ملاحظه کنید که او چند وقت یک بار در مورد اسارت صحبت میکنه. در مورد اینکه مردم اسیر هستند ملاحظه کنید که چه مقدار از خدمت او مربوط به شفا میشه؟ در حدود یک سوم از خدمت او مربوط به شفا می شد؟ چرا او همه اون مردم رو شفا میداد؟ یک جوابش اینه که او اونها رو دوست می داشت و می خواست که اونها رو شفا بده؟ دو نوع مردم در دنیا وجود دارن. یک دست اونهایی هستند که آزاد نیستن کسانی که با زنجیرها به بطری بسته شدن به عادت بسته شدن به امیال بسته شدن به کار بسته شدن به انواع چیزها بسته شدن و آزاد نیستن دسته دوم مردمان آزاد در دنیا هستند فقط کسانی که خدا نجات داده افراد حقیقتا آزادی هستند غالبا افراد آزاد و ایمانداران و شاگردان عیسی مسیح که حقیقت را می دانن و حقیقت اونها را آزاد کرده به پایین نگاه می کنن و با بی‌تفاوتی جدی به کسانی که در اسارت هستند نگاه می کنن. و تعهد خود رو نادیده می گیرن و گاهی توجیهات عوامفریبانه ای در مورد درد و رنج اونها عنوان می کنن. وقتی مسیح اومد، نتونست بی تفاوت از کنار هیچ کدوم از اون اسیران عبور کنه. عیسی جز آزاد کردن مردم کاری انجام بده. این بخشی از اشتیاق و بخشی از دلسوزی او نسبت به این مردم اسیر بود. عیسی در مورد شکست دلان نیز به همون ترتیب عمل می‌کرد. در تعلیم بزرگ عیسی به ما گفت که هیچ کس از توفانهای زندگی در امان نیست. عیسی گفت که زندگی مانند دو خانه‌ای است که کنار هم قرار دارند و طوفان بر هر دو خانه فشار میاره یک خونه پا برجا میمونه و دیگری در هم میشکنه فرق بین دو خونه در اینه که یکی پی محکمی داره و دیگری نداره خونه ای که اساس محکمی داره تصویر شخصی هست که تعالیم عیسی رو شنیده و از اون تعالیم پیروی کرده کسی که خانه رو بدون پی بنا کرده کسی که تعالیم عیسی رو شنیده اما اونا رو نپذیرفته و هرگز از او پیروی نکرده در اون تمثیل زیبا ایسا چیزهای بسیاری رو تعلیم میده یکی از اونها اینه زندگی سخته طوفان بر هر دو خانه خواهد وزید و نکته اینجاست هر کسی طوفان خواهد داشت چون که زندگی مشکله و هیچ کس از طوفانهای زندگی در امان نیست دل شکستگان زیادی وجود دارند مردمان کوبیده و شکسته هدف معموریت عیسی این افراد هستند وقتی که با شکست دل کوبیده و رنج دیده ای مواجه میشید به یاد داشته باشید که شاید مسیح میخواد توسط شما با اون دل ملاقات کنه جنبه دیگر نبوت های مسیحاییش اشعیا بر مرگ عیسی مسیح متمرکز است شاید بتونیم بزرگترین باب در کتاب مقدس در مورد مرگ عیسی مسیح رو باب پنجاسه کتاب اشعیا بدونیم در این باب زیبا اشعیا با سوالی شروع میکنه کیست که خبر ما رو تصدیق نموده و کیست که ساعت خداوند بر او منکشف شده باشد یادتونه که اشعیا معموریت یافت برای قومی معزه کنه که قرار نبود ایمان بیارن وقتی خدا به او چون این معموریتی دادش اشعیا فقط پرسید خداوندا تا به کی طول خواهد کشید تا اونها آماده شنیدن اشعیا کاملا از این حقیقت آگاه بود که وقتی کلام خدا معزه بشه اگر روحل قدست معنی اون کلام رو برای اونها باز نکنه اونها اون کلام رو درک نخواهند کرد به این دلیلش آیا باب پنجاه رو با اون سوال شروع میکنه؟ چیزی که در واقع او میپرسه اینه چه کسی معنی مرگ عیسی مسیح رو میدونه؟ این باب با مهارت با ما در مورد مرگ عیسی مسیح صحبت میکنه. جوهر تعالیمش آیا در این باب را میتونیم در آیه شیش ببینیم جایی که میگه جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود. خداوند گناه جمعی ما را بر وین او قبلا این رو توضیح داده وقتی گفته تعدیب به سلامتی ما بر ویامد و از های او ما شفا یافتیم منظورش اشعیا در اینجا این هست که تمامی تنبیهی که ما سزاوارش بودیم تا با خدا صلح کنیم بر مسیح نهاده شد آیه شش این باب بزرگ با کلمه جمی شروع میشه و با همون کلمه خاتمه پیدا میکنه بار اولی که اشعیا کلمه جمی رو به کار میبره میگه که جمی ما گوسفند هستیم همه ما مثل گوسفندان گمراه شده هستیم و هر کدوم به راه خودمون میریم. همه ما باید از خود سوال کنیم اولین باری که اشعیا کلمه جمیر رو به کار میبره آیا این شامل حال من هم میشه یا نه؟ آیا تا حالا مثل یک گوسفند صحبت کردید؟ ما وقتی مزمور بیست و سه رو بررسی می کردیم ازتون خواسته بودم که در این مورد فکر کنید. خداوند شبان من است. او مرا میخواباند. اون موقع گفتم که این دو معنی داره. معنیش اینه که خداوند شبان منه و من فقط یک گوسفند هستم. حالا اینجا جای دیگری هست که کتاب مقدس به ما نصیحت میکنه که بگیم بع اقرار کنید که یک گوسفند هستیم. جمعی ما گوسفندان هستیم. آیا ایمان دارید که اون جمعی اول در اشعیا 53:6 شامل حال شما هم میشه؟ همه ما گمراه شده بودیم. هر کدوم از ما به راه خودمون رفته بودیم. دومین باری که اش کلمه جمیر رو به کار میبره خبر خوبی به ما میده. جمی اول در باب و سه خبر بدی بود. همه ما گوسفند هستیم، همه ما گناهکاریم، همه ما به راه خودمون رفته بودیم. دومین باری که اش کلمه جمیر رو به کار میبره او میگه خداوند گناه جمی ما را بر نهاد. یعنی بر عیسی شرارت همه ما بر عیسی قرار گرفته. حالا دومین بار که اش عیا کلمه رو به میبره آیا ایمان دارید که این شامل شما هم میشه؟ ببینید اگر شما اعتراف کنید که اولین بار که آیا کلمه جمیر رو به کار میبره شامل حال شما هم میشه؟ و اگر اعتراف کنید دومین بار که کلمه جمیر رو در همون آیه به کار میبره اون هم شامل حال شما میشه اون وقت شما واقعا به چیزی اعتراف میکنید که لازم برای ایمان به معنی مرگ عیسی مسیح بر صلیب اعتراف کنید. باید بدونیم که هدف باب پنجاسه اشعیا توضیح دادن معنی مرگ عیسی مسیح بوده که درد کنیم و بپذیریم که او به خاطر گناهان ما مرده. این باب بزرگ کتاب مقدس چی میگه و برای شما چه مفهومی داره؟ اولا این باب میگه که شما یک گناه کارید و مانند گوسفندی هستید که به راه خود رفته بودید. این خبر بدیه که این باب به شما میده و باید به اون اعتراف کنید. اما این باب خبر خوبی هم به شما میده و اون اینه که خداوند تمامی شرارت های جمعی ما رو بر مسیح قرار داده و دومین جمعی شامل شما هم میشه و لازمه که به اون هم اعتراف کنید. تنبیهی که شما شایستش بودید تا به صلح با خدا دست پیدا کنید تماماً بر عیسی مسیح قرار گرفت. آیا به این ایمان دارید؟ از باب پنجاسهش ایاب کررات در عهد جدید نقل قول شده. وقتی که عهد جدید به این باب بزرگ اشاره میکنه بیشتر بر مرگ عیسی مسیح و گناهان من و شما اشاره میکنه در عهد جدید رسولان بر این عقیده بودند که باب 53 اشعیا در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه من اعتقاد دارم که باب 53 کتاب اشعیا یکی از مهمترین متنها در کتاب مقدس در مورد معنی مرگ عیسی مسیح است مفهوم مرگ عیسی مسیح در این یک آیه خلاصه شده که جمیع ما مانند گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر دین نهاد. اشعیا آمدن مسیح را نبوت کرد. برای خداوند راهی در بیابان محیا کنید. این به هر کدام از ما برمیگرده که قلب هامون رو آماده کنیم تا او را بپذیریم تا اینکه بتونیم در زندگیمون شاهراهی برای خدا بشیم یعنی باید کوههای غرور زندگیمون از بین بره و دره ها یا انسان درونی ما باید با روح خدا پر بشه و بعد بیانیه مسیح رو به خاطر بیارید که به وضوح از اشعیا باب یک اعلان میکنه واقعا وقتی او آمد چیکار کرد او پیغام خودش رو به فقیران و کوران و اسیران و کوبیدگان و شکست دلان اعلام کرد عیسی بعدها گفت اومده تا اون آیه خاص رو به انجام برسونه و حالا من و شما به عنوان کلیسای او فرمان یافته ایم که کار او رو به پیش ببریم اولا اگر شما به لحاظ روحانی کور، اسیر، کوبیده و شکسته دل هستید، امروز نزد عیسی مسیح بیایید. او به خاطر شما آمد. اگر شما پیرو عیسی مسیح هستید، برای اطرافیانتون به منزله دستان او باشید. شاهراهی برای پیغام خدا باشید که پیغام او به اطرافیانتون از طریق شما برسه. دوستان، آیا بینایی روحانی خودتون رو به دست آوردین؟ آزادی روحانی و شفا برای جانتون که شایه نبی وعده داده وقتی عیسی مسیح بیاد دریافت خواهید کرد اگر نگرفتین امروز این هدیه رو دریافت کنید اگر دریافت کردید دعوت خداوند ما از شما این هست که پیغام او رو برای کسانی که کور روحانی، اسیر و برده گناه و شکست دل هستند برسونین لطفا ترتیبی بدین که این هفته پیغام او رو با کسی درمیون بذارید.